سلام سلام سلام خوش اومدید به استیک امشب استیک امشب رو شروع می کنیم ولی قبل از هر چیز لازم است شما تشکر کنیم که با تماس خودتون گاز استیک رو روشن نگه میدارید. خیلی سریع میریم سراغ اولین تلفن از اون دنیا. لطفا مقدار بیاید این وقتتر بفرمدادم آههای فرشدن آه، من آفی. برنگانگوزار جمهوری اسلامی هستم. از آن دنیا بارو دوپست فردایی رو تحماس گرفتم. شما این راجع به هستی که چه آشفتی و بهترین آشفت سجا میدهید. راجع یادم رفته که سی و هفت سال پیش آشی برای تان پختم و تو قابله همه ریختم که تاریخی هست. آ، نو سان میکنید. لاکه اینطور نباشه که غیر از من دیگه ای رو برنده اعلام کنید. حواستون باشه. من کردم بهترین آشپزی رو. معید و منصور رو و صحیح و باشید بله متکرم از بنیانگذار جمهوری اسلامی که به حال تماس گرفته بودن از اون دنیا برای استیک ما و اما شف شهرام شما استایل خوبه ولی کاپیکاری میکنی ما به عنوان یه پرودیویسر باید بتونم از شما دفاع کنم ما الان با این کاپیکاری شما نمیتونم شرمنده همکاری برده. گرامی ایشون سعی کرده بودن شوخی کنن با همون بحث کاپیکاری مطرح نبوده اس الان با ما بودی یا شرکت کننده متفوی محترم دارم میگم همکار گرامی یعنی شما قائده تر خب پیالم راحت شما فکر کنم با ما بودی هی بابا من اصلا یه حرف نمیزنم بریم سراغ شرکت کننده بعدی سلام من خواستم شریع بسط ترچین تزیه آدم عمه با شمه ترچین خله کنده امه ترچین سمت سمنان سمنانو گرمسال پلی هسته اول برنج اوکشی کشی یک سوه برنج قابلمه دریم خالی کندی بعد از اون یک وعده گوشت تازه گوشت گینی ادویه دریم و نمک دریم خزن نی روی این برنج الی بعد از اون تونی ما برنج این گوشت سر خالی ها کنی این وسط توندی از چغندر. استانبولی قیصی و عالی استفاده کنی خلی خشمزه بونه اما این قضا رو هفته پستی با بخشنگ بار بوریش کار برسی تا ساعت چون گنده‌ر این, این غذا باید با شله کم و پچه خیلی ممنونم مرشیدام. من میخواستم دیگه حرف نزنم ولی این غذایی بل. که این دوستمون گفتن انقدر خوشمزه به نظر میومد که من اسم خدامم یادم رفت واقعا زنده بود آوری آوری خوب شد گفتین منم اسم شما رو یاد نمیگیرم هرچی تمرین میکنم چی بود مواره؟ مهرسا هستم همکاری کاری <تص> که واقعا ك... <تص> آدمت گم مهران اما در مورد بعد بگم که چون توش مای سبوز زیاده منم هم مثل همکارم مرد نوسیش داشتم دم شما گ هم کار گرامی مهرسا هستن منم همین گفتم دیگه مگن ما چیزی دیه؟ دیه دیگه گفت بی خی شد تو فته اجازه بدین دوستان پرویهسر محترم. ما نمی رسیم به ادامه برنامه جزز بدید بریم سراغ شرکت کننده بعدی. سلام و ارزاکم خدمت شما شنواندان عزیز یکید قضایه مرسوم و به نام لورستانی ها اسمش جگروزه جگروز قطع هایی جگر هایی جگر میزرن به سیخ نمک میپاشن ریش و یه لایه یه قشایی به نام وز این قصابیه خود چی این وزنه میورن مثل یک کاغذ میمونه از چربی میان میپیچرنش دور تا دور سیخ های جگه بعد که خوب محکم بستنش من سر زغال منقل زغال بلوت صفاه هستم از خور رماباد ممنونم شف سعید صفا جان به نظر من این جگروز شما خیلی باید خوشمزده باشه من شخصا دوست دارم غذای شما رو روی گاز خودم داشته باشم مرسی من باید اول به همکارم سعید تبری بگیم آقا چه گاز قشنگی داشتین شما مچکرم مرسی ممنونم صفا هم خیلی خوب بود غذاتون برای ما بازم از این غذاها بفرستیم بریم ادامه بدیم استیک رو و شرکت کننده بعدی از گرگان سلام به داورای خوب استیک ما گررگانی ها یک آش داریم که با سایر آش ها خیلی فرق میکنه اره اولین اینکه اسمش آش ساک ا اره چمدان ساک دومین که این آش رو سرد میخورن سومین که این آش رو رو زرش پلو و مثل خورش میخورن نمیدانم چرا اسمش رو گذاشتن آش این آشم پر سیر و اسفناج و آبنارینج گوشت و نخود و اریبیلیجم داره اره خیلی خوشمزسته و قول شاعر ساک مخوری رو وی چلو آره یک تا پلو آهنگش هم مفرستم حتما بعد از سخنان و گوهر بوره بنده پخش کنید مرسی ماندانم از گرگان ممنون ان بعدا پخش میکنیم بریم سراغ پرودیوسر جلال دوست عزیز من بیشتر از غذایی که گفتید حس تو رو دوست داشتم همین مسیر رو ادامه بدید به نظر من اگه تو آشپزی به جای نرسیدید در عوض تو موفق میشید حتما با تشکر از همکارم به خاطر این نظری ای خوبی که دادن خشت بله خشت بله من ترکیب آش و زرش پلو رو واقعا نمیتونم هضم کنم آه. نیستم آقا شرمنده بله. شرمنده ایشون نمیتونن پرودوسر ما نمیتونن هضم کنن متاسفیم بریم سراغ شرکت کننده پایانی این استیک پایانی الان فاصل بر واس توبن فاصل اومشون میمونید بچجاب برات بزنین دور حمید تعارف نکنید فقط بهتر از جواب صاومی از یاسید قربون همتون به به به به چی بهتر از کباب آقا من پروژیوس میکنم بله ایشون پروژیوس میکنه ببینید منم همینطور اصلا با کباب ما با یه حال ارفانی میرسیم که اصلا بله همه هم همیتوارن دیگه میگم ملنوش میدونی حال ارفانی فشه نیست چشید من اینو میکشمش نگه نگفتی ای آقا آقا بین کن یه کش آقا بین کنی بزن آقا نکنش برات پروژیوس بگیرینش خلاصین نذارون کار درستی نیست از از از اجازه بدین آه، اجازه بدین اصن کار درستی البته ما بارها گفتیم تو این برنامه همه با هم دوست هستن خیلی ممنونم که میکروفونشون رو بستید بله خب این استیک هم دیگه به پایان رسید تا دیداری دیگه ایشالله دیگه استیک ندارییم قابلمه هات جوشان باد دلم میخواد به جهان امیم جو دنامون جو تزا بو